اگر ابی عبدالله الحسین علیه السلام وقتی که وجود مقدس علی اکبر به سمت میدان حرکت میکند امام حسین دست به محاسن شریف میگیرند سر به آسمان بلند میکنند تمام وجود حضرت را چنان تأثری فرا میگیرد که این عبارت را به زبان میارند لقد از الان کسی برای مبارزه داره میره اشبه ناز. خلقا و خلقا و منتقا بر رسول الله یعنی چی یعنی من حسین تمام تلاشم برای اینه که مردم نبوی بشن مردم دنبال پیامبر اسلام حرکت کنن اشبه الناس شبیه ترین انسان ها خلقا خواب تعجب نداره نه شبیه شبیه پیغمبر خلقا انکل علا خلق عظیم معصوم داره میگه اشبه الناس ناز خلقن و منتقن به رسول الله یعنی امام حسین علیه السلام میخواد بگه علی اکبر یک انسان تمام عیار مکتب پیغمبر خداست که اشبه و ناز به نبی و رسول الله است حالا مردم به جای این که بیان بگن بهبه از این اشبه و ناس بهره بگیریم باید اربن اربا بکنن اما مقام امام حسین از طرف دیگر خوب دقت کنی چی عرض می کنم شب هشتم شب علی اکبره. دیگه وظیفه ما امشب یه وظیفه دیگه ایه به خصوص که دوستان ما در طول سال که اینجا همیشه شبای جمعه میان جو غالب عزیزان زیر سی سال جو رضا امشب مال شما جووناست. منم خودم قاطی شماها می کنم شما میام در خانه علی اکبر به کمک شما دامن علی اکبر رو بگیرم علی اکبر دست ما رو تو دست باباش امام حسین بذاره امام حسین دست ما رو تو دست خدا بگذاره به این نکته دقت کنید خداوند وقتی به ابراهیم مقام امامت داده است میگه به عزب تلا ابراهیم ابراهیم رو مورد امتحان و ابتلا قرار داد فعتمه به بالاترین حد شم رسون وقتی ابراهیم در این امتحان قبول شد فرمود حالا میتونی این مقام رو داش این بالاترین و چی بود؟ سه تا امتحان بود. یکی امتحان مال. ابراهیم مالشو رو برای خدا داد. یکی امتحان جان. ابراهیم جانش آزر شد تو آتش تازه نسوخ. یکی امتحان فرزن. ابراهیم حاضر شد کارت بذاره گلوی فرزن ولی بریده نشد. حالا امتحان امام حسین علیه السلام. مال امام حسین که همه می دونید که چگونه در مال برخورد می کرده. ام شدیدترین شکل ممکن جان بده به شدیدترین شکل ممکن از نظر روحی از نظر جسمی از نظر روحی ببیند مادرش تو سن بچگی پهلوش شکستن ببینه مادرشو رو سیلی زدن ولی در راه خدا ببینه پرق باباش رو شکافتن ببینه جگر برادرش چگونه پاره پاره کردن ببین یکی یکی عزیزانش جلو چشمش کیکه چیکه شدم ببین خواهرش زینب رو میخوان به اسارت ببرم حالا زیر خنجر قرار بگیره ولی وقتی زیر چون این خنجری قرار میگیره نگه ای خدا ببین خوب عمل کردم یا نه میگه الاهی رزم به رزایک تسریمم به قضایک لو معبود است و کدوم بنده در این عالم برای خدا تو مرحله جان چون این امتحانی میدهد اگر من بچه شیعه بسوزم و داد بزنم آتش بگیرم جاد داره یا نه اگر ابراهیم خلیل و رحمان است اگر ابراهیم عبد الهی است، اگر ابراهیم به مقام خلت رسیده است در مقابل امام حسین شیعه ابراهیم اما فرزند یه خانومی سه چهار روز قبل من زنگ زد گفت شما هر سال شب هشتم که میشه این شعر رو ما رو میخونی و این توجیه رو میکنی الان اول میگم گفت به نظر من یه اشکال اومده اشکال رو تر کرد جواب دادم قانع شد ولی اینجام حالا میگم به این مناسبت همه مقاطر دار که هر کسی کربلا میومد از امام حسین اجازه بگیره بره میدان امام حسین موکل میکردن، در آغوش می‌گرفتن نوازش میکردن، صحبت می‌کردن حتی میفرمودن که بیعت از گردنتون برمیدارم آزادید برید این مردم با من کار دارن شماها کاری نداشته اینا رو میفرمود، اما وقتی علی حکیم بدون مرشد مام حسین فرمود برو داشته باش بدون مرشد فرمود باباتون برو امان سامانی خوب فهمیده همینم هست چون تو روایات ما اومده قد اشغال اون خانم رو میگم امان سامانی میگه میدونی کرا چون زبان حال مام حسین اینه بیش از این بابا دلم را خون مکن زاده لیلی مرا مجنون نکن گه دلم پیش تو و گه پیش اوش رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست سعادی که اون خانم پرسید توضیحی که روایت و شعر و عمان میده چیه میگه امام حسین میخواد بگه علی اکبر تو دلمه ولی یه لحظه مکس نمیکنم وقتی پای خدا به میان میاد میگم مرو بابا تو برو تو رو محتل نمیکنم همه رو کرد ولی علی اکبر محتل نکرد ایشون گفت مگه دوست داشتن علی اکبر اشکال داشته. نه من میدونی چی میخواد بگه میگه وقتی صحبت خدا به میان میاد مهر پدری هیچی مهر مربیگری هیچی همه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین ابراهیم سه بار خواب دید تصمیم گرفت ابراهیم سه بار خواب دید تصمیم گرفت ولی امام حسین تا علی اکبر آمد فر بر بود برو علی اکبر رفت اما امام حسین پشترش واسداد نه به خاطر دل میخواد بگه اگه دلم بود با محتلش میکردم لذا بعد از این که اصحاب ابی عبدالله همه شهید شدن نوبت به بنی هاشم رسید اولی از بنی هاشم علی اکبره اولی از بنی هاشم علی اکبره علی اکبرم تا اومد بابا میگه برو آسیسان برو بلا بابا دل منو نگاه کنی گفتم برو من برای خدا اما از اون طرف این اشوه و ناس و خلقن و منطقن به رسول الله دلم به درد میاد که یه اشبه و ناس را به رسول الله دارن اینجوری از دنیا میبرن لذا چه کرد؟ میگه دست به محاطن شریفش کرد. سر رو به آسمان بلند کرد آیه ای از قرآن رو خون بذارید این آیه رو براتون بخونم این آیه رو عبی عبدالله علیه وقتی که علی اکبر به سمت میدان میره آقا سر با آسمان بلند کردن این آیه را خوندن چی فر... چی... کدوم آیه را تلاوت کردن آیه سی و آل سوره آل الله اینالله تفا آدمه و نوهن و آل ابراهیم و آل امران علال العالمین یعنی اینا استفای الهی شده بودن اینا کسانین که خدا اینا رو برگزیده جدا کرده حالا اینایی که برگزیده الهی امام حسینم موظف اینا رو به بقیه بشناسونه نور دیگه نورانیتش همه جا جلوه میکنه تو نامگذاریم علی اکبر علی اوصط علی اصغر چون میخواد علی رو به مردم بشناسونه اسم همه رو علی میذاره این مردمیم که کینه با علی ابن ابی طالب دارم یه وقت شنیدن علی اکبر آمده میدان هرچی کینه با علی داشتن میخواستن سر علی اکبر خالی کنن چون پسر امام حسینه عشبه و ناز خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله علی اکبر لذا صف کشیدن گفتن حالاست که دل حسین رو به درد بیاریم غافل از اینکه حسین میخواد نور بشه هرچه دل حسین رو بیشتر به درد بیارید مقام سار اللهیش بالاتر میره لذابی عبدالله از دور نظارگر بود زینب میگه من هم برادرم بودم دیدم همینجور علی اکبر میره حسین رنگش برمیگرده. بگه هرچه علی اکبر میره حسین مثل که باش میره ارزه به تعبیر من توضیح دادم نه برای دلش برای اون ارزش ها علی اکبر جنگ مفصلی کرد برگشت اومد خیمه گفت بابا جون اتش داره منو داغون میکنه میشه آبی به من بدید سال میکنم آقایو علی اکبری که اشبه ها ناسه هست. خلقن و خلقن و منطقن نمیدونه بابا آب نداره بگه بابا آب بده ممکنه بابا خجالت بکشه علی اکبر میخواد باباشو خجالت بده روز آشورا این آب تجلی ولایت تامه الهیه حسینیت که میخواد بگه بابا من تو امتحان به اون مقام رسیدم که پیغمبر لحظات آخر عمر زبان گذاشت تو زبان علی ابواب از آسمان به قلب علی سرازیر شد امام حسین هم زبانش گذاشت تو دهان علی اکبر یعنی همه چی به علی هم داده شد حالا علی اکبر با عشق بیشتری اومد میدان اینجا دشمن گفت باید دل حسین رو بیشتر به درد بیاریم یک شمشیر به فرق علی اکبر زدن با سر علی و آل علی دشمنند فرق شکافته شد علی خم شد دستاشو آورد به گردن اسب که نیفته خون پیشانی علی اکبر اومد چشم اسب و گرفت اسب ندید اجتباه به جای خیام رفت تو دل دشمن شمشیر داد با شمشیر خنجردار با خنجردار نیزدار با نیزدار ارمان